یکی از اقوام گفتن نامحرم هم هست در حقم ظلم میکرده نمیتونم ظلم رو نادیده بگیرم دیگه رفتارم نصفت به صابق را زد کم شده حتی سلامم هم نمی کنم خب بیعدبی نمیت کرد ولی طبیعیه وقتی انسان ناراحته دلگیره مثل صابق نیست اگر میخواد رحایی پیدا کنه ازش. از این مشکل، خودش رو رها کنه، در خفا پشت سر یه تعریف از این بکنه، بیشه دیگران، حتما یه خوبی هم داره دیگه، یه دو دفعه از خوبیاش برای دیگران بگه، لازم نیست به گوشش برسه، برای خودش مپیده